هر کرا با خط سبزت سر سودا باشد پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم داغ سودای تو هم سر سویده سو باشد تو خودی گوهر یک دان کجایی آخر که از غمت دیده مردم همه دریا باشد از بن هر مجم آب روان است بیا اگرت میل لب جوی و تماشا باشد چون گل و می دمی از پرده برون آی و درا که دیگر باره ملاقات نا باشد ذل ممدود خم زلف توام بر سر باد کن در این سایه قرار دل شیدا باشد چشمت از ناز به حافظ نکند میلاری سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد